اوزو بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین از و سلام و علی نبی نارعاله تاخرین خدمت عزیزان دانشتو عرض سلام داریم روز به خیل عرض میکنیم الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید. ما بحث خودمون رو کلیاتش رو گفتیم و دو محور از اون رو جزئیاتش رو هم بیان کردیم. گفتیم که انواع خبر با توجه به حال مخاطب به سه دسته تقسیم میشه خبر ابتدایی که خالی از هر گونه عدوات و برای مخاطب خالی و ذهن میاریم خبر تلوی که همراه با تأکید استحصانی و استهبابیه و این رو برای مخاطب سائل شاک متردد میاریم و بعد گفتیم کلام انکاری و گفتیم این رو برای مخاطب منکر میاریم و عدوات انکار در این کلام خبری واجب و گفتیم به حسب انکار مخاطب ادوات تاکید اضافه می میشه و گفتیم منظورمون از ادوات تاکید در اینجا ادوات تأکیدیه که کلام رو تاکید میکنه مثل الا ان حروف زائده رد نون تاکید قسم و همثال اینها برای مورد ابتدایی و طلبی مثال زدیم و متن رو هم خوندیم برای مورد انکاری از مثال پنجم ششم هفتم آغاز میکنیم که این ستا مثال رو زده و بعد متن رو براتون میخونیم پس درس رو تکرار کردم که حواستون بهش باشه. قال ابو عباس از صفحو. آقای ابو العباس صفاخ گفته میگه هو اول خلافا العباسیین بوی عبل خلافت سنت معتین سنت معتین بوی عبل خلافت سنت و سنتین و سلاسین و کان جوادن کریم العخلاق توفی عبل انبار سنت نعتن و ستن و سلاسی خب آقای عبال عباس چه گفته؟ گفته لعوملنن لینه خب پوش کنید لا لام داره نون تأکید داره دوتا ادوات تأکید جمله وقتی لام و نون تحکیب هست میشه جواب قسم قسمش ذکر نشد دو تا عدات تاکید داره این جمله و جواب قسمه میگه لعوملن لین الین یعنی هر گونه نرمی و هر گونه جونم و عمرم به خرج دادن نرم برخورد کردن میگه من قسم میخورم که لطیف و با جانم و عمرم رفتار میکنم اعمال میکنم نرمی و لطافت رو حتی لا ینفه الا شده تو مگر اینکه تا جایی که حتی لا یعنی الا یا الا لا تا اینکه نفع نف ندهد یا مگر اینکه نفع نف ندهد مگر شدت. یعنی من با پنبه سر می بردم جونم و عمرم میگم. تا جایی که دیگه ببینم سودی نداده مگر بخوابونی تو گوش شدت و سختی شمشیر رو بذاری پس گردن طرف ولهاکرمن خب. الخاصت الخاصه یعنی خاصتی فکو فامیل خودم دوست و رفیق خودم خاصه اونها رو اکرام میکنم ما امن عمنتهم علال آمته آم ما تو هم علال آمته آم تا موقعی که احساس امنیت میکنم از اونها اونها رو احترام میکنم جلو میندازم هوای اونها رو دارم تا فامیل هست و که کسی دیگه نمیرم اونها رو جلوتر تر میندازم علال آمته آم بر آمه من من هیچ موقع و فامیر رو فراموش نمیکنم بنام برم سراغ دیگه تا, زم... تا اون موقع که میشه تا اون موقعی که احساس امنیت میکن. بعد میگه ولا اغمدن نسیفی و شمشیر خودم رو تو غلاف نگه میدارم حتی یسول لهو الحق تا اینکه حق او رو از غلاف بیرون بکشه یه جایی باید حق رو بگیرم اون از خلاف بیرون میشم وله خون ریز نیستم دنبال جنگ نیستم مگر اینکه حتی حقی بخوام بگیرم وله اغمدن حتی یسول لهو الهب وله اعتیم نه دست به جیب هستم از بیتالمال میبخشم به هر کسی هرچی بخوام میبخشم اهل عطا بخششم و اعتیم نه حتی الله را میبخشم تا جایی که ببینم دیگه بخشش فایدهی نداره برای بخشش موضعی نمیبینه خب بخشش میکنم حتما تا جایی که مگر این که ببینم دیگه عطیه و بخشش کردن موضعی نداره محلی از عراب نداره ببخشی بعد در طرف حالا اینطور کهی شد. خب لا, لا اعملن نه یک لا من نه دو لا اغمدن نسه لا اعتین نه چهار چهار تا جمله آورده همه با لامنون تأکید و کلام انکاریه و گفته من این کارا رو میکنم من اهل این کارام خب اینو به کی میداشته میگفته به مخاطبی که احساس کرده نسبت به اینها منکره به مخاطبی که احساس کرده نسبت به اینها منکره یعنی مثلا در مورد اول میگه چی؟ میگه تو نرمی به خرج نمیدی همش اهل سختی هستی و همش میخوابونی زیر گوش جونم عمرم تو بلد نیستی که میگه نه قسم میخورم من اهل نرمی و نرمش هستم مگر اینکه جایی که دیگه سود نداشته تو جمله دوم مثلا مخاطب این تو فکر میکرده که تو با همش غریبه ها رو بیچاسیدی و کفامینو و کردی خواسته پیش تو هیچن وقتی چسبیدی به غریبه ها میگه نخیر من اکرام میکنم فقط و فامیل خودم رو اونها رو هوا دارم اونها رو وزیر و وکیل میکنم و اونها رو ترجیح میدم بر امه تا زمانی که احساس کنم که آمه کاری به کارم ندارن و اینها هم خیانت نمیکنن خب این جملات رو کرد حالا بریم سر شیش شیش قال الله تعالی خداوند تعالی فرمود قال الله تعالی ل تبلون فی موالکم ونفسکم ل تبلون فی موالکم وانفسکم بلا یبلو یعنی آزمون بلا یعنی آزمود. بلا تو که یعنی امتحان کردن بلا تو که بلا یبلو خب حالا بلا یبلو اگر مجهول بشه میشه بلی یبلا بلی یوبلا بسه دو ایه یودا نابسه باویه دیگه یوبلا حالا یوبلا یوبلا صرف بشه سیغه نهمش میشه توبلونه توبلونه توبلونه یعنی چی توبلونه؟ یعنی امتحان کرده می شوید. توب لونه. حالا توب لونه یه لام بیاد اولش. میشه توب لونه. نون تأکید بیاد. نون تأکید که بیاد. نون اعرابی هست میشه توب لونه. خب. بعد چون ما قبل واو فتح هست. اینجا مجبور میشیم واو رو زنبه بدیم برای رفع ساکنه ساکنین میشه ل توب ل وان ل ل تب ل وان یعنی چی یعنی قسم میخوریم که امتحان کرده میشوید شما آزموده میشوید شما فی کن و کن در اموالتون و انفستون خدا شما را آزمایش میکنهد خب خدا اینو داره به کی میگه به مخاطبینی که احساس میکردن خدا کاری به کارشون نداره چون از اعمالشون اینطوری برمی آمده که احساس آزمودن نمیکردن میگه نخه باور کنید شکم نکنید انکار که اصلا هم نکنید نتوب لبون نفی انوال کن شما به طور یقین انکارم نکنید که در انوالتون و در انفستون جان و مالتون مورد آزمایش خدا واقع میشد لتو بلون فی پس بلا این نیستا بلا یعنی آزمودن مصدره حالا بلا بنا یا بلو یعنی آزمود خب بلا یبلو یعنی آزمورد بعد مجهولش میشه چی بلیه یبلا یوبلا صرف میشه سیغه نهم میشه توبلونه تبلونه لام اولش میاد ل تبلونه نور تأکید آخرش میشه ل بعد واو و نون التغاز ساکنه چون واب ما قبلش فت هستم میدین میشه لطب ل نه لطب لون نه یعنی به طور یقین شما آزموده میشید امتحان میشید در اموال و مخاطب به این آیه هم کسانی بودند که از نظر خداوند انکار میکردن که خدا اونها رو در انوال و انفرسشون بیاس بسند. بعدی رو نباه والله این تکیدش نسبت به اون قبلی ها بیشتره. چون اونا دو تا تحکید داشتن. لام و نونه تحکید. این سه تا شده. یعنی ممکن خیلی انکار شدید تر بود. میگه والله والله قسمه. یعنی اقسم و والله این خودش تک اینی اینه یه تک لعخو همت لامم لام مزهلت اینم یه تک این جمله تاکیدش؟ بیشتره میگه به خدا قسم اینی لعخو همت من صاحب همتی هستم و هستم به خدا قسم من ارزهی دارم که. تسمو علمجد ولا تفتر تسمو المجد ولا تفتر من همتی دارم که تسمو تسمو یعنی تعلوم اوج میگیره به سوی مجد و عظمت ولا تفتر و اصلا فتور و سستی هم نداره خودو به خدا قسم من بیارزه نیستم من ارزهی دارم که مجد و عظمت رو دنبالشه و هیچ کوتاه هم نمیاد خوب این داشته به کی میگفته به کسی که منکر ارزدار بودنی این بوده تو حالا بی ارز و بی بخاری هستی م? تو اصلا دنبال مجد و عظمت نیستی تو بلند پرواز نیستی گفت به خدا قسم من همتی دارم ای دارم که دنبال مجد و عظمت و یه سر سوزنم هم توش نیست والله این لیل و همت این تسموهل المجد صفت همته تسموهل و ولا تفت. خب دیدیم این تحکیدش بیشتر بود چون منکر انکارش بیشتر پایین میگه که لطبلوان نه یعنی لطخبرون نه آزموده میشه تفت و یعنی تزعف اینا ما گفتیم حالا متن رو نگاه کنیم اما فتایفه الاخیرته مقاتب منکرن الحکم جاهدن له جاهد همون منکر خواهم می‌خوره به حکم یعنی منکر حکم زیر حکم می‌زنه قبول ندوت مخاطب و فی و فی مثل هاذه الحال یجب ان یوزن من الكلام من وسائل تقویت و تاکید ما یاد فو انکال المخاطب و ید اوه و علت تسلیم ید علت تسلیم دعوت میکنه اون رو به اینکه تسلیم بشه یعنی مجبورش میکنه به تسلیم شدن. میگه در این حالت در مثل این حالت واجبه که قرار داده شود ان یوزم زن کرد قرار داده شود در کلام از وسایل تقویت و توكيد از ادوات تقویت و توقید در ضمن کلام گذاشته بشه ما این ما مفعول دوم زمنه در ضمن کلام بیاریم از وسایل تقویت و توقید آنچه آنچه که دفع میکنه انکار مخاطب رو و وادار میکنه او رو به تصدیق به مقداری که انکار او رو دفع میکنه بیاریم و ان يكون ذلك بقدر انكار قوته و به و, و واجب این باشه به اندازه انکار از جهت قوت و هرچقدر هرچقدر او قوی عدوات انکار ما بیشتر هر چه انکارش کمتر عدوات کمتر تنظیم میکنیم و لزالکه جا الکلام فی مثال الخامس و السادس به خاطر همین در کلام ششم و پنجم کلام اومده محکدن به محکده اومده محکدن به محکده اینه با دو تا محکد همان قسم و نون و توکید. قسم و نون و توکید. منظورش از قسم و لامه ها درست شد که گفتیم جواب قسمه یعنی اونو به اون شک گرفته اون لام بهش میگه لام توته قسم داره بگید لام و نون و تکید نمیکنه قسم و نون و اما فیلم سال الاخیر فقط فرضا از از شاع را انل اینکاره ااقوا چ بر فرض کرده اینکاره خیلی شدید داره و نههاا اکهده او به صل سردواته به سه تا اعداد خیهلقسم و الله این نه و نام و یسم محااض از ضر اینکاره اینو بهش می انکاری و به توکیدلخبر ادواون کهتون صنعتیاند ذکر غواردت ال تعائفتون صت مننا این تمام شد حالا بیاید توی قواعد قواعد رو من برای شما خوندم ولی یک بار دیگه میخونم چون نظر دارم که یک مطلبی رو بیان کنم که خب چند لحظه سیستمم قدر شد حالا که دیگه اینطور نشه خب گوش کنیم سلاس و ان یکون خالی از ذهن من الحكم و فی هازه العال یل الخبر و من عدوات توکید و یسم ما زربو من الخبر ابتدائیه انشاءالله الان درست شده باشه صدا باشه خب می للمخاطب سلاس و للمخاطب سلاس و حالاتن خالی از ذهن من الحكم و فیها ذی ال عالی القائل خالیا من عدوات توکید و یسم ما حاز من الخبر ابتدائی ان مترد ددن فر طالب و ان یه سلایل دیتین فی معرفته و فی حاضر حال یه حسنو، یه حسنو بود که گفتیم تو کی دخوله لیتمک نفسه نفس مخاطب و یوسام باهاز از زربو طلبی کرد جیم ان یکونه من کرند فرقو و فی حاضر حال یجب و ان یقین کرده خبرو به مؤکدن او اکثر علی حسب انکاره به حسب انکاره مخاطب قوتا و ضعف از جهت قوت و ضعف و یوسم با از ضرب و انکاری هم. اینو بهش میگن انکاری نم این تیکه که الان سیاسه سی می لتوکید الخبر ادواتون کسیره منها ان و ان و الابتداء ابتدا و نون آت توکید و احروف و و, و, و و الحروف و و وقت و اما از شرطیه این بود که توضیح داده اما یه نکته گوش کنید این قاعده ای که ما خوندیم که خالی و کلام ابتدایی سائل متردد شاک کلام طلبی منکر کلام انکاری به حساب انکارش این قاعده و آوردن کلام بر اساس این قاعده بهش میگن که آوردن کلام گوش کنید گوش کنید الگاول کلام علا مقتضا ظاهر حال بهش میگن چی؟ آوردن کلام بر اساس مقتضای ظاهر حال مخاطب نوت درصد این رعایت میشه نوت درصد چیه؟ رعایت میشه گزم نوت درصد کلام متکلم بر اساس مقتضای ظاهر حال مخاطب میاد یعنی چی؟ بر اساس مقتضای ظاهر حال مخاطب توضیح دادم یعنی که ما سوال نمیکنیم از طرف مقابل که من میخوام بگم زیدی استاده یا نیستاده تو چی فکر میکنی؟ آه. اون بگه من مثلا شک دارم ما بگیم خوب باست یه لازم داریم مستحب هم بگیم من منکرم بگیم چقدر منکری کم یا زیاد بعد بگیم و این کارا رو نمی کنیم بلکه ما بر اساس روانشناسی که مخاطب شناسی که نسبت به مخاطب داریم کلاممونو تنظیم میکنیم نزا گفتیم بر حسب ظاهر حال مخاطب پس این تقسیم خبر بر اساس چی بود؟ این القا او کلام ال خبری ال حسب مقتضا، ظاهر حال مخاطب آوردن کلام خبری بر حسب بر افتضی ظاهر حال مخاطب درصد اینطور. اون ده درصد چیه؟ اون ده درصد اینجای مقدمه که درس بعدی ماست این میشه اینه گاه متکلم اون ده درصد که اصلا درس بعدیه گاه متکلم کلام خود را بر اساس مقتضای ظاهر حال مخاطب نمیآورد. بر اساس مقتضای ظاهر حال مخاطب نمی بلکه بلکه بر اساس مقتضای حال میاره ظاهر میذاره کلام به این صورت میگن به این شکل به این ده درصد میگن خروج کلام از مقتضای ظاهر حال مخاطب خروج کلام خبری از مقتضای ظاهر حال مخاطب به چی میگن؟ خروج کلام خبری از ظاهر حال مخاطب از مقتضای ظاهر میاد بیرون ده درست خب چرا؟ ببینید هر کجا هر کجا ما قاعده رو رعایت نمیکنیم حتما نکتهای هست ولی باید قاعده رو رعایت کنیم تو نود درصد قاعده رو رعایت میکنیم ده درصد قاعده رو رعایت نمیکنیم اونجا باید نکتهای باشیم که ما ظاهر رو رها کردیم ظاهر رو رها کردیم و مقتضای حال رو چسب درست حتما باید نفتهی باشه و ایلال نمیشه مثل اینکه نگاه کنید مثل اینکه طرف خالی و ذهنه یا حتی معیده اصلا خالی و ذهنم نه نسبت به کلام ما پیشتاوری نداشته باشه خالی و بلکه اصلا معیده خب ولی کلام رو براش انکاری میاریم مثلا کجا فرض کنید. فرض کنید یک نفری هست در این که باید به پدر و مادر احسان داشته باشه ادب داشته باشه نیکی کنه نه تنها شک نداره منکر هم نیست بلکه معیدم هست آیاتشون خونده بلدم هست خب. اما این آدم ما میبینیم که نسبت به پدر و مادر خودش بیعدد خب این اگه بخوایم بهش بگیم احترام پدر و مادر واجبه باید برش تاکید کنیم شک داریم نه باید برش انکار کنیم انکاری بیاریم منکر نه معیدم هست ولی وقتی که میایم به این میخوایم بگیم میگیم ان فلانی ان بر الوالدین لواجب یا میگیم والله ان بر الوالدین لواجب فلانی به خدا به پیر به پیغمبر اهتمام به مادر واجبه چه بهش گفتیم واسه خاطری که میخوایم بهش بگیم چی ما بگیم ما ظاهر تو رو قبول نداریم تو داری در ظاهر میگی من قبول دارم باید شم میخونی. اما دروغ میگی تو باطنت منکر اگه منکر نبودی ها اگه منکر نبودی پچه رو بی احترام میکنی. تو منکری اگه منکر نبودی چرا بی احترام نمی کردیم گرفتی یه نفری هست مثلا پزشکی میدونه که سیگار کشیدن ضرر داره شاید خودشم مقاله علمی هم در این رابطه نوشته. ولی وقتی ما میبینیم که این آدم خودش داره میکشه چی میگیم بهش میگیم آها به پیر به پیغمبر به هرکی بخوای قسم میخورن همه این علما و دانشمندان تب گفتند، سیگار کشیدن داره این الان خالی و ذهنه بلکه اصلا از خالی و ذهن یه پله بالاتر معیده ولی ما کلام رو براش به شکل بگید انکاری آوردیم چرا؟ به دلیل اینکه میخوایم بگیم ظاهر تو برای ما ارزشی نداری تو ظاهرت خالی و ذهن معید اما عملت داره میگه توی تو مخالفی قبول نداری منکری ما کلام رو طبق تو آوردیم نه طبق ظاهر حالتو اینجا تو این ده درصد القاول کلام شده الان مقتز حال، نه مقتزا ظاهر حال آه. اون نورد درصد اینجا خروج کرده از مقتضای ظاهر حالا یه مثال بزنم از قرآن. می‌بینید هیچ کسی نیستش که مرگ رو قبول نداشته، همه قبول دارن. مؤمنین که دیگه بیشتر. درست شد نه؟ خدا توی قرآن میگه سمم سمم انکم بعد از ذالک لمیتوم ثم این نکن بعد ازالکه لمیتون یعنی چند تا داره یه این نداره یه لام لمیتون داره م? لام داره یه جمله اسمیه داره که گفتم اگر جمله اسمیه در جایی کلام حساسش بر تأکید باشه جمله اسمیه هم میشه یه تحکید یه سه تا داره کلام انکاری مخاطب منکر شدید فرض شده در صورتی که مخاطبین که من شما باشن هیچ کدوممون منکر مرگ نیستیم هیچ کدوم چرا خداوند ما رو ظاهرمون رو اگه طبق ظاهر ما میگفت میگفت انتم میتون شما میمیری ولی چرا اینطوری گفته به پیر به پیغمبر پس هم خورده و تاکید کرده که شما میمیری چون عمل انسانها اقتضای این قبول رو می کرد اینکه تو سر هم دیگه میزنن اینجا از هم دیگه برمیدارن اینکه به هم دیگه زور میکنن اینکه خناهایی می سازن که هزار سال دوام داشته باشه اینکه نمیدونم اموال جمع میکنن که اگه یک میلیون سال هم زندگی کنن روزی یک میلیون سال تومن بخورن بازم زیاد میاد این نشانگری چیه این که مرگ رو قبول ندارن در ظاهر قبول کرد این نکته باعث شده که بگه ظاهر شما برای ما ملاک نیست مخاطب حالت ملاکه و حالت منکره این اون ده درصد است که تو بلاغت یا مثله یا مثله اینکه طرف منکره منکر. کلان باید برایش چی بریم انکاری؟ ما برایم که ابتدایی میاریم. ابتدایی میاریم. چرا؟ برای اینکه میخواییم بگیم انقدر شواهد و دلائل هست که انکار تو انکار بیارزشیه. ارزش نداره. انقدر شواهد و دلائل وجود داره که ما نیاز به تأکید نمیبینیم برای تو. داری چیزی رو تاکید انکار میکنی که قابل انکار نیست. انکارت بی برای اینکه اینو نشون بدیم، این کار خود ما همینه رعایت می‌کنیم مثلا یه نفر میاد از در, در تو ما داریم درس می‌دیم. میگه آقا بس امروز شنبه است. میگیم شنبه. امروز شنبه است، میگم شنبه است. بعد بعد آقا چی چی شنبه است؟ دیروز شنبه بوده شما اشتباه میکنی اصلا اینطور نیست من خودم یقین دارم شما اشتباه این آبه فرمش شمبه یعنی چی یعنی که تو داری یه چی داره انکار میکنی که انکارش بیمورده انقدر دلایل و شواهد هست که امروز شنبه هست که دیگه نیاز نداره من بگم به پیر به پیغمبر میخوای من برم دلیل بیارم تقویم بیارم مثلا این حرفا رو ندارم شمبه صحابه فرق. و ما داریم این کاره ببینم تو خود قرآنم هست تو خود قرآن به منکرین وحدانیت خدا اونه که منکرم که خدا یه میگه بگه اله حکم اله واحد اله حکم اله وحد که باید بفرماید ان اله نه میگه اینکه خدا یکی چیز انقدر دلایل و شواهد برش هست که نیازه بر اینکه ما تأکید کنیم نیست. پس یاد گرفتیم که این قاعده ای که ما خوندیم قاعده اصلی است 90 درصد هم رعایت میشه و الگا اون کلام الخبری علا مقتضا ظاهر حال مخاطبه، آوردن کلام خبری بر مقتضای ظاهر حال مخاطب. اما ده درصد که درس بعدی ماست ده درصد میشه که به خاطر نکته بلاغی کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال مخاطب میاد یعنی خروج میکنه از این قاعده درست شد؟ و اونجا تقو مختزای ظاهر نمیاد تقو مختزای حال میاد و داره نکته است و اون نکتر رو شما باید بفهمید اصل داستان فهم اون نکته است خب اگه اینو فهمیدید این حاشیه رو نگاه کنید یه یک بعد از قوله میگه وضع الخبر ابتدائین او طلبیین او انکاریین این نما فقط و فقط و و حسب ما یخت فی نفس القائل یعنی متکرم بر حسب اون چیزی که تو ذهن من شنونده میاد من نمیپرسم که شما چه حال و داری بعد برات کلام رو به. نه به حسب اون علا حسب ما یخت فی نفس القائل من ان از این لحاظ این میاد من اند اونی که کوطورور میکنه تو ذهن شنونده اینه من اند سامو خال زه او مترددون عممون کرد به اینکه شنونده از نظر من گوینده خالی ذهن سایل متعدده کلام رو تنظیم بود. اما فقط این قدر یعنی اون ده درصده اون 90 درصد میگه وقت یا ادلول متکلم و احیانا من التاکید و گاه اوقات متکلم از تاکید دست میکشه و گاهی او و گاهی اوقات تاکید میکنه مالا یتطلب التاکید چیزی که طلب تاکید نداره نه اغراض بلاغیتم به خاطر نکات بلاغی که سن و ها سن و بینوها فیما بعد ما اونها رو درس بعدی میگیم سن و ها بعد وقد يعكد الملايه تتطلب التاكيد تاكيد میکنه چیزی رو که از قضاى تاكيد نداره ميگه سم نكون بعد از ذلك لميتون يا یا قد يعد المتكلم احيانا من التاكيد بعض تاكيد كنه نميكنه میگه اله حكم اله واحد آ اين موارد نه اقرازن يعني یعنی له اقرازن به خاطر نکات بلاغي است كه سن وبينه ها بعد و ما اقراز بلاغي رو بعد برای شما یکی یکی بیان میکنید که درس بعدی ماست که کلام کلام خبری دیگه همونه و تموم میشه الان تقریبا یه مقداری از درس بعدی را من گفتم که بتونید حواستون باشه الان نگاه کنید عنوان درس بعدی رو میگه خروج و خبر انمقتز از ظاهر انمقتز از ظاهر یعنی انمقتز از ظاهر حال مخاط خروج کنه خبر از مقتضای ظاهر حال مخاطب یعنی اون ده درصد اینجا درسی که امروز خوندیم اون نوت درصده بود کلام بر طبق مقتضای ظاهر حال مخاطب آورده می شود. درست شد؟ اونجا که خروج میکنه نکته داره ما ظاهرش رو گل نمی ظاهر رو رعایت نمیکنیم، کلام رو برخلاف ظاهر حال مخاطب میادم حالا اگر این رو فهمیدید تا نموزش مثال زده که خودش یک دوره نظمون اصره یعنی یک مبحث کامل حواستون باشه که بخون نموزشون فی تعین از روبین خبر و عدوات ترکید. در تعین انواح خبر و عدوات ترکیتش یک وقان عبولتاهیه حالا آقای عبولتاهیه گفت اینی رعی تو اواقبت دنیا مخاطب میگه انی رایت اواق بعد دنیا درست شد فلانی من عاقبت دنیا سرانجام دنیا رو دیدم اینجا احساس کرده که مخاطب نسبت به اینکه این دنیا رو تجربه کرده باشه اهل تجربه باشه سرد و گرم چشیده باشه یه با شک داره فلانی شک نکن با نه یه کرد، فلانی شک نکن من آدم مجربیم من تجربه کردم دنیا رو. این هست بعد میگه فترک تو ما احوال ما اخشا. چون دنیا رو تجربه کردن دیگه در این مورد احساس کرده که اون خالی و ذهن. چون کسی اگه مجرب باشه دنیا رو تجربه کرده باشه خب تقرب تجربهش عمل میکنه. لزام میگه فترک تو ما احوال ما اخ شد. پس کنار گذاشتم هر چرا که دوست داشته باشم. اهوا حوی یا یهوا یعنی احد به یوهو ما اهوا یعنی ما اوهبو. پس کنار گذاشتم هر چرا که دوست داشته باشم ل ما اخ شد به خاطر آن چه که می‌ترسن ازش. چون فهمیدم هرچی دوست داشته باشی این دنیا نامرد از دست انسان میگیره بنابراین دل نبستم به چیزی فترک تو ما اهوا نخشی به خاطر خوف و ترسی که دارم به خاطر اون چی که میترسیدم ازش که گرفتن دنیا باشه اون چیز رو از من من کنال گذاشتم الان دو تا جمله است یکی این نیره خب ایشون نسبت به این طلبی آورده چرا؟ چون خواسته به مخاطب بگه شک نکن من مجرب بعد که گفت من شک نکن من مجربم یعنی مجرب بودنش رو پیشه بعد مطلب دوم که من کنار گذاشتم چیزی رو که دوست دارم به خاطر اون که ازش میترسم این رو دیگه کلام ابتدایی آورده گفته نسبت به این دیگه شک چون آدم مجرب همین کار میکنه نگاه کنید انی رأیتو میگه طلبی نه بعد و ترک ما آهوا میگه ابتدایی درستون هست الان ما اینو فهمیدیم که با مخاطبش داشته حرف میزاده چه با او صحبت کرده مثال دوم و قال ابو الطيب آقای ابو الطيب متنبی تو تا بیت گفته و این ابو الطيب رو میگن شاعر نفسی این روانشناس و واقعا روانشناسی دارد خیلی انسانشناس بوده خیلی حالات افراد و جوامع رو بیان میکنه تقریبا مشابهتی بینشون و سعدی میندازن جلوی تو جایگاه سعدی خیلی بالاتر از این چیز هست. ولی خب اون هم انسانشناس است. صد برابری. اما این هم شاعری است که در انسان شناسی جایگاه خودشو دارد. ما خودمون به آقای متنبی بسیار علاقمندیم و یکی از شعرهایی که همیشه دیبانش با ما محشور است و کار داریم همین آقای متنبی است. چون واقعا آدم فسیح و نگاه کنی آقای متنبی چی می میگه علا قدر اهل العزم تعدیل اعظائم این علاقت متعلق متعلقه به است علا اعظائم جمع عظیم است عظیمه یعنی تصمیم اراده عزائم میشه جمعش میگه تعدیل ما تصمیم ها و اراده ها میاد علا اهل العزم به اندازه اهل از یعنی تصمیم گیر. این علاقت مقدم شده مفید حسره یعنی تصمیمات فقط و فقط به اندازه همت تصمیم گیرشه یه نفر آدم حاتم تایی روح بلندی داره هر هم جود و کرم کنه از این حساب نمیکنه چرا چون روحش بالاتر از اون رو اختصاب کن یه نفر آدم با خودمون صد پایین و چیزی یک بار به یک نفر یه نونی داده باشه صد بار میگه ده می تصمیم ها و اراده ها به اندازه تصمیم گیرانشونه. آدم بزرگ مثلا یک نفری هست فهلوانیست بزرگ این اگر بالاترین کار رو هم بکنه امیر در خیبر رو بلند میکرد یک بار هم برونه میابد در میدان اما اگر یک نفر باشه که درصد شجاعتش در حد یک درصد این اگه اومده باشه تو میدان دو قدم رفته باشه جلو هفتاد بار مید میگه علا قدر احل العز یعنی کارها رو باید با کنندش مقایست کرد علا اهل العزم تحت نظر و تحتی علا قدر الکرامه مکارم جمع مکرومته یعنی فضیلت کرم جود و کرم به اندازه کرم کنندشه یه نفر که کریم هست اگر همه مال خودش به هم بدل این خیالش یه نفر که اهل کرم نیست یک جا به یک نفر کمک کرده باشه هر کجا برسه میگه میفشنه بلا شه اینگار که کوه کرده و تعطی علا قدر کرامه به اندازه کریمان میاد علمکارم کرم هایی که میکنه حالا نتیجه میگید و برو فی عین الصغیر سغارها ها, ها میخوره به عزائم و مکارم میگه گنده دیده میشه ر فی عین الصغیر در چشم آدم کوچیک یه آدم کوچیک چشمش و انگار کوب کنده بزرگ دیده میشه سغار جمع صغیره کوچکهای این تصمیم های کوچیک این کرم های تو توی خیلی گنده دیده میشه فکر میکنه چه کرده و تک برو فی این سویره سقا خود کوچکترین تصمیمات کوچکترین کرم و لطفا در چشم آدم کوچیک او خیلی گنده دیده میشه و تسقه رو اما و کچیک دیده میشه فی عین العظیم در چشم آدمی که روح بلندی داره حزیمه تو چشمو کوچیک دیدم شامل عزائم کارهای بزرگ عزائم جمع عزیمه کارهای بزرگی کرده ها میگه ما که کاری نکردیم نه اینکه تالووف کنه واقعا کاری میگه نکردیم چرا چون روحش خیلی بلندتر از اینه روحش این کار رو کوچیک میبینه میگه ما خیلی گنده تر از اینه ما میخواستیم چی بشیم مال این شد ما میخواستیم چه کنیم ما میخواستیم همه گرسنه‌ها رو کنیم چهار نفر سر حدش نده قاطی وناجدی چون روح بلنده و تکبرو فی عین الصهیره صغاروها و تسخروف فی عین العظیمه العظا چهار تا جمله است چهار تا مصرع چهار تا کلام که خب. هر چهار تام تعتل عساوین تعتل مکارم تکبر همه اینها فعل مضارع چهار تا اومده و هیچ کدوم هم عدوات تأکید ندارد چرا چون متکلم احساس کرده که مخاطب نسبت به این خبرهایی که اون مخاطب ده خالی و سهنه یه مطلب رمان شناسانه ای رو داشته به ما یاد میداده گتو گوشات رو با کنیم بشه هیچ نیاز به تأکید هم نداشته همه کلام های افتداری خیلی خشنگیه پایین نباه کنی العظائم جمع عظیمه و هیل ارادتو ول مکارم جمع مکرومه اسمون منار کرم شد اسم مستر کرمه یعنی لطف شده ول معنا معنای بهت اول اینه اندل ازایمه ول مکارم تحتیل آغد فایلی ها اراده ها و کرم ها میاد بر اندازه فایلش انجام دردش و یوغاس و مبلغ ها به مبلغه اندازش به اندازه اونها فیاس میشه فتکون و, و عزیمت ازاکان و ازانو بزرگ دیده میشه اگر فتکون و اون کارها بزرگ هست اون اراده ها بزرگ هست هنگامی که فاعلینش بزرگ باشه توی دیت دوم میگه از زمیرفی سغارها،, سغارها یعود و علالعظامه ول مکارم که منم گفتم معنای بیت اینه ای انه سغیر من هما که از این اراده و کرم یعظم و فی این سغیر خیلی گنده میشه که چشم آدم سغیر انه سغیر من ها یعظم و عین این سغیر در کسی که سغیر و قدر خیلی گنده دیده میشه لعنه های از همه همتشو گذاشته شده همون یه ذره یه ذره اراده همه همه همت این بوده بذ همه جا میگه همه ورزاش همین روحش همین قد بوده ولعظیم و ماده بزرگ یسقرو فی عین العظیم و عظیم کار عظیم یسقرو کوچک دیده میشه در چشم آدم عظیم مولا آدمی که روح بلند داره ولعظیم و کار بزرگ اراده بزرگ یسقرو کوچک دیده میشه فی عین العظیم القدر لان فی همته زیادت تنلک چون اصلا همتش خیلی بالاتر از این همتش خیلی بالاتر از این اینو اصلا هیچ از این خب اینو فهمیدیم نگاه کنید قال حسان ابن سابط حسان ابن یکی از شعرهای پیامبر بود که از پیانبر به واسطه شعرش در مقابل جاهلیگین و مشرکین دفاع می میکرد. قال حسان بن ثابتن حسان بن ثابت گفته و اینی دقت کنید و انی لهلون هولف صفت مشبهه است یعنی شیرین و انی لهلون تعترینی ای یعنی عرز آرز شد تعترینی یعنی تعرزنی آرز میشه بر من مرارتون مرارتون مراره یعنی تلخی مر یعنی تلخ در مقابل حلو خب چی گفت؟ گفت من بسیار شیرینم انی له بان من خیلی شیرینم خیلی اخلاق نرم و لطیف و خوبی دارم تحترین گاهی بر من آرز میشه بر آرتون. یه مقدار تلخ گاهی وقادم مگزی میشه گفتم من خیلی خیلی خوش و شیرین و سر حالم اون غمگین بودم اصلا نشه گاهی وقادم تلخیده دستم گاهی وقادم مگزی میشه گیر باش میکن و ان دی را کن و من کنار گذارم ترراک سیغه مبالغه تاریک یعنی کنار گذارنده ترکه ترکه من ور میکنم زیر بار نمیرم اینیل ترراک لما این لام, لام تقریهته ترجمه نمیشه اون ما مفعول ترراکه من کنار گذارم آن چرا لم او او یعنی لم او او هم این لمعا عودی اون ده کس رو پیدا کرد بخاطر قافیه شهره یعنی لمعا عوده آید سلم هست عوده هو یعنی عادتش داد لم عوده ها یعنی عادت نداده شده هم به آن بهش نداره ترجمه میشه چی؟ عوده دو مفعولیه دیگه اون مفعول اول شده نایفایل انا مفعول دومی آید سله افتاده و اینی لطر را کن و من کنار میگذارم زیر بار نمیرم ما آنچرا لم و هو بهش عادت داده نشدم من زیر بار چیزی که تو خلق و خوم نباشه نمیرم و دو تا کلام کن یکی گفتش بابا من خیلی خوش اخلاقم گایی مگزی میشن. یک دوم گفتش که من زیر بار چیزی که قبول ندارم نمیرم عادت بهش ندارم نمیرم من زور قبول نمی کن. این هم حرف تو ولی اینا رو با تحکید میگه با اینه و لام میگه و جمله اسمیه میگه،, میگه چرا به که طرف مقابلش اکس این فکر میکرده احساس میکرده طرف مقابل میگه چی؟ میگه بابا تو که همش اخلاقت مگسیه حالا که بخندی مادم و تو هر چی که میگن قبول میکنی زیر بار هر نوع ظلم و زوری میری اصلا خود اراده نداری گفته نه آقا من اصلا و عبدال چنین نیست من خیلی هم خوش اخلاقم گاهی اوقات اخلاقم مگسی میشه و اصلا هم زیر باره چیزی که بهش عادت ندارم و زوره نمیده هر دوتا کلام اینکاریه و بسیار هم زیبا برد حالا نگاه کنید کلام بعدی رو. و قال الارجانی این الارجانی این ارجان یکی از بلاد فارسه این استان فارس خودمان استان شیراز نمیدونم فکر میکنم شهر کازرون بوده اسم قبلش این قاضی بودتون اونجا ببینید اینقدر مسلطه به زبان عربی به خاطر اسلام دیگه که سرامده و شعرگوی درجه که میگه حوه علقاضی ناسه الدین ابو بکر علعرجانی بله نسبتون الا بلدون به فارسه کان فقیهن شاعرن کسی در شعر. رقیقهو رقیق شعر بوده یعنی شعرش خیلی لطیف بود وقت قطوف سنت، خمس معتن و خمس و عربعین خب حالا ببینیم چی گفته میگه انا لفی زمنن انا لام جمله اسمیه کلام انکاری انا لفی زمنن ملعانه صفت زمانه ملعان صفت مشبه است یعنی پرک من منفتنه فتن جمع فتنه چی گفت؟ گفت مخاطب قبول کن انکار نکن اینه همین که من میگم جزین نیست اینا لفی زمنه ما در یه دورانی هستیم ملعان منفتنه پر از دوز و کلک و فتنه. گفت ما از دریه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که فتنه و هیله و دوزکلک سرت پاشو گرفته حالا این بیچاره گردن پنجم بوده اینو میگفت اگه بود چی میگفت دیگه ها موقع نه عصر دیجیتال بوده و نه این شبکه های اجتماعی و نه این روابط نزدیک الکترونیکی و غیره و اینها میگه اینا لفی زمنه ما در یه دورانی زندگی میکنیم پر از دوز و کلک فتنه اینو داشته به یه نفری میگفته که مخاطبه نسبت به اینکه روزگار روزگار بدیه پر از دوز و کلک و فتنه است همه سره هم کلاه ها نسبت به این منکر بوده تو بابا تو بد بینی تو بکنید همه به قول خودمون علور. دوز و کلکه نه بابا منتون دارن زمین یعنی احساس کرده مخاطب نسبت به این که روزگار بده منکره اینو تاکید کرد. و کلام این کار بعد در مورد اون مرتبه دوم دیگه احساس کرده که وقتی مخاطب قبول کرد دنیا بد شده این مطلب دیگه میپذیره نسبت به این ذهنش میشه خالی و زد. گفته فلای و آب و و من فرطن فرط یعنی خوف تس ملعان یعنی رجل و فاعل این فائل میگه بنابراین اون فای فای نتیجه است حالا که دنیا پر از فتنه است و دوز و کلکه و تو هم قبول کردی پس بنابراین لای و آب و بهی بهی یعنی فیه پس اب نمیشه در این روزگار اب نمیگرن روز در این روزگار کسی رو که ملعان پر باشه از ترس کسی که دست به عصا حرکت کنه پر از ترس باشه و بیگدار با آب نزنه کسی برش عیب نمیگیره مردم میگن حرف داره دیگه با او همه دارن سر هم دیگه گلاه میذارن خب اگر آدم دست و حسان نباشه کلاش بسه محرکه است پس بنابراین عیب گرفته نمیشه در این روزگار به کسی که از ترس ها پر باشه خیلی خیلی احتیاط نسبت به این موضوع که کسی که احتیاط میکنه بهش نمیخندن نسبت به این مخاطب رو خالی و زن فرض کرده کلام رو بدون تحکیب این مقدمه اونی که اون اولی رو قبول کنه اون اولی رو اگه قبول کرد که دنیا پر از آشوب و فتنه و دوز و کلکه میگه پس پانوه های وقتی که هم آدم مش دوز داره زندگی میکنه خب بعد خیلی خیلی حواسش به خودش باشه دیگه اون تیکه اولش که آدم در کنار یه مشت آدم هیلگر داره زندگی میکنه اون رو احساس کرده مخاطب ممکنه منکرش باشه کلام رو این قبول کن وقتی قبول کرد میگه خب بالا اگه آدم قاطیه مش باشه نباید احتیاط کنه چرا پس اگه احتیاط بکنه کسی ای برو نمیگیره فلا یا آب و بهی ملعان و من فرقه الفرق الف خوب این رو هم دیدیم اون طرفم هم همینطور گفته بله انا لفی زمنن کلامه شیله بشته انکاری نوشته قلطه دیگه این انکاری باید بنویسه ابتدا آها آه درست اون دلسته. لفی زمنن الاخر البیت درست شد تا آخر بیت نه الى آخر المسرا یعنی ان لفي زمن لخ ال نوشته یعنی الى آخر بیت نوشته ها بعد ازش الى آخر المسرا حالا اونم یه نون نوشتنه نوشته لخ البيت ها یعنی ان لفي زمن ملعانه من فتنه فهمید ملعانم این فتنه نمی نوش بهتر بسیم بریم مثل الاخ الاخر المصر این کاریه این نولام و جمله اسم. اما فلا یا و الاخ اینجا یعنی الاخر البیت تا آخر المصر روش شد ابتدائیه و هیچ عداد تحکیدی نداره خب این هم قال لبید آقای لبید ابن ربیعه از شعرهای جاهدی پایین نگاه کنید هو لبید بن ربیعته اهد و المجیدین یکی از شعرای خوب ول فرسان المعمرین و یکی از سواران بسیار بسیار, بسیار با طول عمر فرسان المعمرین اسلم و حسن اسلام مسلمان شده اسلامشان خوب بوده منافق نبوده قیل انهو مات و عمره معتون و خمسون و عربون اصنه گفته شده که این مرد در حالی که 145 سالش منها تسعین اصنه تنفل جاهلیه 90 سالشو در جاهلیت زندگی کرد و له المعلقات المشهوره معلقه هم داره که معلقه مشهوری است یکی از اون هفت است و الان یه بیتش رو میخون میگه که و لقد تو، لقد لام بر سر قد میاد جواب چی قسمه یعنی اون لقد جواب قسم اون لام انگار جای والله نشسته یعنی والله لقد درست شد اصلا لغت جواب قسمه گایی اوقات قسم قبلش دیک میشه مثل تلاه لقت آسرک الله علینا تلاه لقت آسرک الله علینا سور یوسف گایی اوقات هم نه اون قسمه محظوفه درست شد مثل این که گفتم فعل بالامون لامونونه تاکی جواب قسمه گایی اوقات قسمش حذف شده اینم همین طوره. و لقد علم تو یعنی الان ما دو تا تعداد تأکید داریم یکی لام یکی قد میتونی بگی لام میتونی بگی قسم هیچ فرقی نبید لقد علم تو منیتی میگه من یقین کردم لطعتین منیتی منیه یعنی مرگ این لتعتین نمنیتی محلم منصوب مفعول علمتست از باب تعلیق. من یقین کردم باور دارم که مرگ سراغم میاد میگه درست سنم شده ساعت سال ساعت سال فکر نکنید اسرائیل فراموشم کرده نه من یقین دارم اسرائیل میاد من یقین دارم مرک سراغمان خواهد آمد لتعتین نمانی. چرا؟ اصطیناف بیان چرا یقین داری مرگ سلاغت میاد؟ میگه انل منایا منایا جمع مریه است. زیرا مرگ اسباب مرگ لا تتیش و سهام ها لا تتیش یعنی لا تخته ها. خطا نمیکنه تیرش دیرش. زیرا ازرائیل دیرش خطا نمیره خلاصه به هدف میشونه شونه. دو تا کلامه یکی ولقد علم تو لطعتیه نمنیتی این انکاریه ها. یعنی احساس میکرده مخاطب منکر یقین است مخاطب میگه یقین نداره میمیره این اما کرده فکر میکنه میمونه گفته نه بابا. من یقین دارم که خواهم باست. نوشته قسم و قد یعنی اون لام و لام توته قسم صفر نشانه قسم این ملمن ها یا لا و سهامها ها نه آورده این نه عدات تحکید آورده این نا. یه جنه هم هست درست شو میشه کلام تلبی کلام میشه از نوع بگید تلبی شک داشته خود شک نکن که تیر مرگ به خطا نمیشه میگه المنایا لا تتیش و سهامها تلویه اینلمان ولقد ای علمت لا تعتی ان المنایا لا تتیش و سهامها لا تخت او این نگاه کنید لا تتیش و ای لا تخته میگه و کل سحمین یخت او و یوسی هر تیری ممکنه خطا بره ممکنه اصابت کنه به هدف بزن یخته او و یوسی کل سهمن یختو و یسیب الا سهم المنیته مگر تیر مرگ فانه قاتل لا نهاده اون تیر مرد قاتل صد در درصد و حتما میکشه اون به هدف میخوره تیرش خطا نمی نگاه کنید شعر بعدی قال عن تو از زبیانی نابقه زبیانی گفته که شاعری بود در جاهلیت نقاد شعرم بود و شعر دیگران رو در سوق اوکاز می نشست و داوری می کرد اینقدر جایگاه داشت میگه ولستا و لسته به این بابای زایده است بر سر خبر لعیسه یعنی لسته مستبقین این بابای زایده است برای تحکیم استبقا یعنی طلب بقا شو کرد. طلب کرد که باقی بماند. تو کرد یعنی گفتم بمون. صدا قد شد آیا برگشت صدا برگشت خب گوش کنید گوش کنید میدونم میدونم فهمید برگشت خب میگه تو نمیتونی تو نمیتونی طلب بقاع دوستی رو بکنید نمیتونی یه دوستی رو پیش خودت نگه داری لا تلو مهو الا شع لمه یلومو یعنی جمع کرد شعص یعنی گرد و خاک جولیدگی عشعص اصلا به کسی میگفتن که سرش جولیده و گرد و خاک دارد شد میگه ولستا به مستبقه تو نمیتونی نگه داری دوست را این جمله لا تلمهو حال است از دارای فائل مستبقه تو نمیتونی نگه داری دوست را در حالی که جمع نمی کنی او را با جولیدگیش منظور از جولیدگی یعنی به زدن هاش خطا کردن هاش. تو نمیتونی یه دوست پیش خودت نگه داری؟ در حالی که او رو تحمل اوت زدن ها و تحمل خطاهاشو نمی کنی همش اشکال میکنی تو خودت معصومی میگه تو نمیتونی یه دوست رو پیش خودت نگه داری. در حالی که تحمل خطاهاشو نمی کنی در حالی که او رو با خطایش کنار هم جمع نمی کنی یعنی چی یعنی مردم نمی... تو نمیتونی یه دوستی پیدا کنی که هیچ گونه گرد و غباری نداشته باشه هیچ اصلا خطا نکنه میشه اگر میخوای دوست بشی بمونه باید خطاهاشو تحمل کنی باید اونو با خطاش کنار هم جواب باید اونو با خرد شیشه با هم قبول کنی نمیتونی یه دوستی رو پیش خودت نگهداری در حالی که اون رو با قرض شیشه ها و خطاهایی که داره جمع نکنید، یه جا تحویل نگیرید. نمی‌شاید. چرا؟ میگه عیول لجال المحزز بود. نه عیو است. کدام یکی از مردان عالم هستند که محززند؟ صد در درصدند. محذب یعنی تهذیب شده، یک مشکل قلقی نداره. کیه که نمرش 20 باشه؟ ما اینا نمره 20 هم داریم، خود دستی. چون کسی نیست که نمروی بیست داشت. خب اینو داشته بکرین نگفته. این جمله ایور رجال المحذب این جمله استفهامیه این شاییه. اینو بدش کن. یه داخل بحث ما نیست. ایور رجال مبتدا، ایور المحذب خواهد. این جمله رو کاری نداریم. جمله اول لست به مستبقیل این بحث ماست. تا سر علاش عصر. این جمله داشته به کسی میگفته که در این رابطه شک داشته. یعنی شک داشته که میشه آدم دوستی داشته باشه که هیچگونه خلق و خوی هم نداشته باشه. میگه نه خیلی همچی چیزی نیست. شک نگه. که نمیشه دوست رو پیش خود نگه داشت و هیچگونه خلق و خوی کجم نداشته باشه. همچی چیزی نیست. دوست رو باید با خوردوشی شاش با هم قبول نگاه کنید لا تلو موهو پایین میگه یعنی لا تجمه و الیک او رو کنار خودت جمع نکن و شه از اتصاخ و رسم منال غبار. چرک شدن سر از گرد و خاک ول مقصود الان ما بهیم منال حفوات منظور اینجا اون چیزهاییست که حفوات یعنی چرت و پرتاب و لقزش میشه حفوات از لقزش خواهی که در او هست و معنی قولهی اگر رجال المحذر معنی این استفهامی که گفته کیه که نمرش بیست باشه یعنی لعی صفه کامل کاملون لاعی بفی استفخام انکاریه. یعنی هیچ کسی نیستش در عالم که کامل باشه و نمرش بیست باشه آخریش و قال از شریف و رزیه. آخری شریف رضیه صاحب نهجر بلاغه اعلالله الله مقامه شریف ببینید مرحوم شریف رزی چی میگه میگه قد یبلغ ار الجبان جوانو به مالهی مالهی سیبلغو از المعدم معدم یعنی فقیر میچیست صفت شجاعه جبان یعنی ترسو میگه یبلغو میرسد قدو هنوز معنی نکردم میرسد انسان ترسو با مال خودش یه نفریه یک نتروسی سانت قدشه از گربه هم میترسه هیچی به قول خودمون تو وجودش نیست سرم پیشش دانشمند، اما این مال داره آدم ترسو و بیارزو نفهم با مال میگه این آدم میرسه ما به جایی که لیس یبلغهو نمیرسه به اونجا شجاع فقیر یه شجاع فقیر میبینی با یه هیکل دو متر و ده سانتی با یه سینه پهن، اومده شده محافظین. که از این چیزی میگه گاهی اوقات مال باعث میشه که آدم هایی که دو هزار غیافهش به جایگاهی میرسن که آدم شجاع که فقیره نمیرس آدم ترسو با مالش گاهی اوقات یه آدم ترسو مال داره میده میبینی اوه این همه شجاع این همه آدم شجاع فقیر رو استخدام کرده آدم کشین و چه قتل و غالت و جنایت رو انداخته خودش بود گربن هم نمیتونه اما با مالش ببین چه جنایت هایی دیگران نیگران رو کرده نوکر خودش میگه قد یبلغو این قد بر سر فعل مزاره اومده اینجا آیا مناش تحبیقه یعنی مثل اون قد اللهی یعنی قطعاً خدا میداند میشناسد که گفتین یا اینجا قط یعنی گاهی گاهی میشه میگه گاهی اوقات از صد تا یکی ممکن پیداش یا آدم ترسو با مال خودش به جایی رسیده باشه که شجاع فقیر نمیرسد این فرد اینجا به معنای تحقیق نیست ترجمه هم نمیگیم به یقین میرسد یا به قطع میرسد انسان فقیر با مال انسان ترسو با مال خودش به آنچه که انسان شجاع فقیر نرسیده است اینو نمیگه یه گایی میشه یه گایی وقتم آدم نگاه کنیم کسی که هیچی نیست ترسو فلان غیره شده پادشاه همه این شجاع آن و همه اینها زیر بلید گردن میزنن بر افکار ای آدم ترسو با مالشو ثروتش به جای رسیده که شجاعان نرسید این از نظر ساختاری کلام ابتداییه چرا چون قد داره اما قد برای تحکید نیست قد برای تقلیله یعنی گاه میرسد انسان ترسو با مال خود و آنچه که نرسیده است به آن شجاع ایشون قد یبل و تا آخر بیت گفته کلام طلبیه قد هست ادوات تو نه این قد برای تاکید نیست این قد برای کثلیل این فرق میکنه با اون قدی که تو آیه داشتیم که مثال سوم بود تو امسله قد یعلم الله قد یعلم الله المعوقین منکم ها یعنی به تحقیق می خدا محققیم رو چون نمیشه بگیم که خدا گاه می قد بر سر فعل مازی برای تحقیق بر سر فعل مزاره برای تقلیله گاهی با قرینه بر سر فعل مزارم مثل همین قدیه علمالله الله میشه برای تحقیق اونجا برای عداد تحقیده اما این نیستش که قد هر کجا بیاد برای تحقیقه نه اینجا قد برای تقلیل چون اصلا قد بر سر فعل داره 90 درصد برای تقلیل چند درصدی است مثل قدی علم الله که ما با قدی نمیفهمیم برای تحقیق میاد میشه عدوات تک ما درس بعدمون رو مقدمتن این جلسه عرض کردیم درس بعد رو بخونم درست شد که انشالله نشنبه شرط براتون خواهم خواهم بحث کلام خبری تموم میشه وارد کلام انشایی و پنج قسمش خواهیم شد. یه نگاهی به بحث کلام تا اینجا داشته باشید که بخواید باشم بیاید که کلام خبری که تموم شد بتونید جمع جورش کنید و کلام انشایی رو خواهیم کن و پنج قسم اون رو به طور کامل مورد بحث قرار بدیم انشا معرفق و معییت باشید. در پناه خداوند سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکا.